الحمد لله الحمد لله و والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين صدق الله خالقنا العظيم رب إسرهلي صدري ويسر لي أمري وأحلو لقذة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلي الحكيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي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 السوره روم به حضور شما شو. ترجمه آیه این است که ظاہر گردی در فساد در بیابانها در دریاها، به بی چیزی که مردم به دست خود ایجاد کردن این فساد که در دریا و در خشکی به وجود آمدند و مسایب زیادی را برای بشر به وجود آوردند. نمیلت این است که اون پسادها ها را که وقت انسان لیو اللذی ان ها بر آن داشتند، هم بعض لذی امیلو، تاکه خداوند به بعض اون را که انسان ها اعمال میکنند، علت شاندن عذاب چه هست می لال لهم یرجعون تاکہ انسانها در پر گذشته گزشتہ راجب فسادهای مختلف صحبت شد یکی از مفسرین معاصر که تفسیر بسیار جالب دارد. اسم تفسیر شرس معارج و تفکر و دقائق و تدبر انسان در قرآن خدا ام فکر بکند ام تدبر داشته باشد و خدای متعال گفته از افلا تدبرون القرآن آیا انسانها قرآن را با تدبر با فکر و غور نخواندند؟ را تدبر نکردند یا در قلبشان قفلها زاده شده انسان ان زمین را خدای متعال برای انسانها ساخته در پایان جزء 29 میاد الم نجعل الأرض کفاتا احیاء و امواتا خداون می فرمائند کہ ان زمین را من برای شما جای زندگی قرار دادم شما را کفایت میکند احیان و امواتا تا زمانی که زنده هستید روی زمین هستید این زمین همه نیازهای شما را برطرف می کند و زمانیم که پود کردید زیر زمین برای شما هست احیان و امواتا من جمله دارم همیشه می در زمین درس تفسیر تا زمانی که زبان بغوچی میگویم تا زمانی که شما زنده استید، این زمین شکمی شما را زیر می کند زمانی که مردی بدن شما را زیر می کند زمانی که مردی بدن شما را که ان ت whirring و بوهش همه را نگیرد این بدن شما را زیر می کند بدنش شما زیر خاک که دفن می کنین سمار در خواه سمع اماته و اقبره خداوان این انسان را همه زندگیش را برایش فراهم کرده در سن عباس اگر نگاه بکنید همه زندگی این انسان را خدا روی زمین تامین کرده زمانیم که می, می میرد بدنش را پنهان می کند تا فعف خونش همه نگیرد می فرمند که در اینجا خود زمین برای ما هست نه برای ما بلکه از ابتدای دنیا اولی بشری که روی زمین قدم گذشته که پدر ما عدرت آدم باشد مادر ما عدرت بی بی هوا باشد از اونجا شروع شد تا ما تا انتهای دنیا همه ما باید این روی زمین زندگی بکنیم باید این محیط را نگاه داریم من خودم خود را محیط بان این زمین میدانم من خود را یک محیط بان میدانم باید محیط زندگی خود را ما سالم نگاه داریم و در زمین این آیت مسائلی که امروز بشر به وجود آورده که به طرف نابودی زمین نه تنها زمین بلکه به طرف نابودی هوا و فضا به طرف نابودی دریا به طرف نابودی دشت و سارا می رود بشر روز روز این زمین را خرابش می کند این زمین را تخریب می کند از بین می برد. باید ما قدر این زمین را بدانیم. الله زور جلال روی این زمین اکسیژن را آفریده که هر یکی ما یک کبسول نداریم به فضا اگر می رواند این اکسیژن با کبسول حملش می کنند این اکسیژنی که با اینجا تنفس می کنند. آب را خدا انجا آفریده هوا را انجا آفریده نور خورشید را انجا آفریده و این ب بین زیبائی را برای ما آفریده باید ما این را نگاه بداریم و در زمنیمین آیه که من تلاوت کردم که زهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس بگه انسانها امروز این زمین را میخواند به نابودی بکشن انسان ادعا دارد که من پیشرفت علم دارم علم پیشرفت کرده اما پیشرفت علم اگر منجر به نابودی زمین بشود اون پیشرفت در بکر نیست حالا بگه انسان ها های مختلفی در این قره زمین نمودند که امروز زمین را نابود کردند در اون تفسیر که جز نیوز فونزاوه اون تفسیر بود که امن سوره روم را تفسیر کرده در اونجا دخالت انسان در جنگل ها یکی دخالت انسان ها در جنگل ها دون دخالت انسان در شکار بی رویه سوم اوم که انسان به وجود دارده سبب آلودگی این کره زمین شده و چارون حالت انسان در تغذیه حیوانات گوشت و شیر اونا را آلوده کرده و پنجم ایک اتم و صلاحای از کے که روب نابودی این کره زمین می این پنج دخالت را بگه انسان نموده هست اما این دخالت ها منجر شدن به نابودی محیط زیست حالا اولین دخالت انسان ها در جنگل ها این انسان آمده سابقا انکارخان های سنعتی چوب و غیره نبوده اگه یکی می رفت یک چوب لازم دارش یک چوب از جنگل در می آردون عنوانی یک چوبه دستی یا دسته بیل و تبر و تیشه و اینا الان امروز می که با دستگاه های مدر ار راهای پیش رفته این درخت‌های های تنومند نابود میکنن و اینا را تک و بکارخان چوب و غیره می اما نمی دانند که این درخت شنیمتی بوده این درخت میاد. اکسیژن تولید میکند و گازهای کربونیک را میگیرد این انسان آمده اون درخت را نابود میکند اکسیژن از بین میرود و گازهای کوشنده جاگزینش میشوند دخالت انسان ها در جنگلها سبب به آمدن بیابانها و نابودی گونه های نادر و سیستگاه حیوانات شده مثلا این شخص آمده در این جنگل حیوانات زندگی میکردند. کردن ولی شیر جالبی هست اصلا در کل ایران من سراغ ندارم یک جایی شیر در بیابان زندگی بکنن بی در حالی که صادقا خیلی شیر زیاد بوده انسان ها این شیر این حیوانی بسیار شجا و دلیر راز بین برد ببر منطقه ما ببر که در منطقه ما زندگی میکرد بزرگترین و بهترین ببر دنیا بوده آخرینش میگن در من در کتاب خواندم آخرینش در نزدیکی روستای ما اونجا امون که الان صادق آباد میگن مگه آخرین ببر در اونجا یکی جان در میری اون زمان آمد گفت که من بزرگترین ببر شکار میکنم امنا با توفنگ زد و پشت بعدم در کنارش اینه بلندش میکنی سر بازاره در کنارش عکس گرفته اون اکسش را من دارم یدود چار متر درازی اون بود بهترین ببر دنیا که من چندین سال پیش از این در روزنامه دیدم در مجلی که اگر کسی ببر مازندران یا ببر امن ترکمن سارا را به ما نشان بدد اینقدر جایزه به اون میدهیم از دور نشانش بدد کنجا فلانجا ببر من دیدم حالی که اون نسل ببر منغرز شد ناظر ترین پلنگ ها در این من منطقه ما هستند حالا اینا را میزنند میکشند و نسل اینا را میخوان منغرز بکنند و دوزن حیوانات خیلی با ارزش در این جامعه پلنگ در این جنگل ما معنیز مونده لغیش نابود کرده هم. و خداوند این حیوانات را درست کرده در درست کردن هر حیوان خداوند حکمت دارد و وقتی که جنگل نابود شد زیستگاه حیوانات نابود شدند حیوانات هم خود خود اون غریز می از بین می روند پس دخالت در جنگل در اینجا سوی نابودی هم محیط زیست می شود هم حیوانات می شوند این جنگل های ما کمبوترین جنگل ها بودن امروز از طرف منار انسان ها نابود کردن و از اون طرف هم نابود کردن بالای من که چیز جزی منده من تابستان رفتم ایک جای خدا می دل من این توری سخت ان بیسترین درخت شاخای نرزدان وقتی که شاخه درخت زده بیشود اون درخت بیمار می شود مریض می شود داخلش هوا می رود آب می رود خود به خود پوسیده بودم و افتاده بود من بارها گفتم به مسئولین زیرفت که شما به این جنگل اکثر بزنید جنگل نابود می شود این سبب تمیزی هوای ما این جنگله سبزی هست شادابی دارد همه چیز نباید انسان این را از بین ببرد این اولین مسئله که جنگل ها را نابود کردن چیزهای زیادی نابود شدن و در کل دنیا اینطوری امروز این مسئله پیش می رود باید جلوگیری بشود و همچنین شکاری بیرویه شکار ما این کار نمی کنیم که حرامه شکار در حرم و در وقت ایرام حرام هست در بقیه جایز مشکل ندارد اما وقتی که می که این حیوانات از بین میروند باید با دست نگاه داریم. من دلیلم دارم از قرآن حضرت نو علیه و سلام دنیا توفانی می شود همه عالم زیر آب می روند اما برای این نسل حیوانات منقرض نشوند در دو سوره قرآن هم در سوره هود هم در سوره مؤمن که مؤمنون خداون می فرماید که ای نوح از هر حیوانی یک جفت در داخل کشتی سوار کن چه را گفت تا نسر نامون قرض نشود طوفان بیاد آب بیاد همه اینا که در خوشکی زندگی می کنند می میرند یعنی در آینده براین انسانها از این حیوانات جنگلی و بیابانی چیزی نمی ماند خداون به نوح دستور می دهد که این حیوانات را در کشتی سوار کن. چرا این دستور تا نسرین این حیوانات منقرض نشود یا عضرت ابراهیم علیه صلی اللہ مکه را می گودین یا حرم نشکار جایز هست و کندن درخت و گیائش برای اینکه اگر از ابتدا در هر سال چندین میلیون حاجی می روان، هر کدام یک بوته را می کندند امروز در سرزمین مکن درخت رما می دیدیم اسم اون گیاهان و درخت که در احادیث آمدند امروز مونا را اصلا نمی دیدیم اسم فقط در احادیث سوغیر غیره می شنیدیم و می خانده اما خدا دستور داد به ابراهیم که انجا حرم خرار بده نہ شکار حیواناتش جایز و نه خندن گیاهاش. در مدینه منوره حضرت رسول اللہ فرمودند امون طوری که ابراهیم مکر حرام قرار داد من مدینه را اگر شکار را حرام نکرد اما هر کسی به جنگل میرم درخت رمی زد پیغمبر دستور داده بود که اونا جریمهش بکنید خب جریمهش چی بود؟ گفت امون تورش و امون تنابش و امون چیزهایی که برده و اینجا امون ارازم بگیرید ها دوباره نروان در میان دکوی مدینه گفت اینجا حرم هست و شکار کردن بیرویه ان این منجر به انقراض حیوانات می شود و خداوند برای حفظ این حیوانات و برای حفظ این گونه های نادر به حضرت نو دستور داد که حیوانات را در کشتی سوار بکن و خدای متعال ما را اینجا آفریده همه چیزی که در زمین هستن برای ما آفریده و خلق لکم ما فی الارض جمیعا بنا فی ما هست امروز علماء پی بردن بین که اگر که ما و اقرب و بعضی حیوانات موزید برای انسان اما میگوند امونا مفیدن بگن در جایی که اقرب زیاد هست انسانها را میخورن در اونجا سرطان کمه در جایی که اقرب نیست ببینید سرطان خیلی زیاده بگه اون نیش اقرب تقریبا واکسینه سرطانه. یا یه امراضهای مختلف هست من خودم یک زمان پام درد میکرد پای چپم خیلی به شدت درد میکرد خدا چه شده؟ میخواستم دکتر برم سر نماز بودم یک زنبور آمد و این پای منو نیش زد همین پای چپی منو نیش زد خیلی درد شدیدی گرد اما به امر خداون همون پا درد گم شد این حیواناتی که سمی هستن میگم سم مار کبرا دوائی هست که اصلا قیمت ندارد دوائی هست که اصلا قیمت ندارد که امروز اونا میخوان که از بین ببرند بعد هم جلوگیری کردند که ماری کبرار اینا نکوشید نسل نمنغذیر نکنید برای اون سم مند. حالا برای امراض مختلف یک ذره از اون سم میشک وقتی به بدن انسانی بزارن میبینید که اون دردهای مختلف از بین میروند اون بیماریهای مختلف از بین میروند و امروز انسان میخواد که این تا زمین را بیم بریزد سابقنا منطوری که اگر شدتی بود اگر دیگه چیزی بود خداوند حیوانات و حشرات را آفریده بود که همه اینا را میخوردن تا عادل برقرار میشد امروز محمد ام سم زده اون حیوانات مفید را کشت و اون موزیام با سم ما عادت کردن درن با سمم سم نمیمیرن هر روز هم سم بزنیب بازمون از زنده ید و این چیزی عجیبیه خداوند خودش تا زمین را نگاه می دارد ایکو سیستیمش را نگاه می دارد افصال در این پایین ها رسوا می گوین اینا جوجهارا می خوردند همه اینا را تلر گذاشتند اینا را بعد زدن بعد انواع مختلف نابود کردن طوری موش شدن که دوباره داخل خانه ها پر از موش شدن آمدن چکار بکنیم این موش ها را چکار بکنیم گفتا اون که مفید برای شما اون را کشتید موش شدن راسوب این حیوانات که موش شکار میکنند، اون تعدل این زمین را برقرار میکنند. شما این را کشتید درک ایک مسترد من دیدم گوب این حیوانات پرندگانی مانند ترگست ناشخور گوب خیلی برای این زمین مفیدند یک جایی که ناشی می افتد پورن اینا میان اونا میخورن تا افتون و آلودگیش رو این زمین نمیماند و سخانهای صافش رو میگذرند اونا نظره نظرند اما انسان ها را گا ان حیوانات را کمیارام گوشتا بیدر نمی خورندونا ربی کشد قصد افخونی ان موجودات مرده انسان را نابود می کند انسان ها را نابود می کند محیط زیس را نابود می کند این شکار بی رویه سعی بی رویه یا گونه نادر اینا کار درست نیستند. در اون تفسیر می که اینا انسان ها آمدن شکار های بی بی رویهی با اون زمان اگر سابقا شکاری می کردن یکی مثلا ایک خاوی را دنبال می کرد یا بود یا بر اسب سوار بود یک تیر کمان درس این تیر دیا می داد یا می خورد یا خورد در روز اگر یک حیوان شکار می کرد بر می الان میاند با توفنگ های مسلسل و مدرن با ان قطاله ها به اسطلاع ان های مختلف این حیوانات را می دارند در یک روز چندین گونه را بین می پس این نسل اینا منقرض می شود می فرمین که این شکاری بیرویه که منجر به انقراز حیوانات شده است و نسل اونا را منقرض کرده که به نفع انسان خدا اونا را آفریده می این یک فساد در زمین هست این فساد دوم هست و سوم می که جدید کارخانه مختلف که گازهای های تولید می‌کنند و فضا را آلوده کردند علا در همه شعره بزرگ همه مسئولین سرگردانند که چطوری آلودگی هوا را برطرف بکنند می گن برای انسان های برای بیماران برای کودکان برای نا امروز اجازه نمی دهیم که از خانه بیرون بیان برای اینکه هوا خیلی آلوده هر کاری میکنند، هارودگی هوا برطرف نمی شود شارها هم آلوده شدند و این اکسیژن که ما به این خوبی تنفس میکنیم. را آلوده کردن از بین بردن نگه سنائی جدید علت آلودگی هوا و گازهای های گلخانهی شدن و حتی لایه اوزون را از بین میبرند. خداوند این را که آپا بر سر ما این لایه هست بنامه ازون میفرماین این جلوی نور آفتاب را میگیرند شدتش را کم میکند مانند پردهی که بالای سر ما باشد سفاری که بالا سر ما باشد شدت اون را کم می کند و انجا بیماری های جلدی و پوستی وجود نمی آن اما وقتی که اون لایع از بین رب این نور خورشید مستقیم به طرف ما می آن و بیماری های مختلفی را ایجاد می کند و امروز در خیلی جاهای زیادی میگن اون لایه سراخ شده و به فکر ترمیمش هستن که چطوری این را ترمیمش بکنیم چطوری این را باستازی بکنیم و این ما گفتیم بله کارخانهای عظیمی و بزرگ درست کردیم که نا برای انسان دارن اما از طرف دیگه نداریستیم که فضا را خراب کردیم هوا را خراب کردیم عروضگیه اوارا به وجود آورده در بعض از جاها انسانها خیلی زیاد عمر می کنن ابن خلدون می نویسن در مقدمه کتابش که آب و هوا در طول عمر تاثیر دارد قضا و قضر الائی است اما این آب و تاثیر دارد در بروچستان ما در اون کوها انسانهای مالا سراغ داشتن قبل از ما امین زودیا گفتن تا سال عمر کرد تا سال در این بلوچستان ما ایک شخص اونجا بنامه قلیب سلطان محمد گفت سی سال عمر کرده اون پرگندش خود خودم دیدم سی سالی سال انسان عمر لی کنه ایک جایی من رفتم در کوهاج من خبر کردم خوان جا جنازه است مراحتمون جا تو اون شخص پوز نکرده اون تو نگاش کرده نگو تو پوز کرده برای مولا اونجا مولا نه اونجا من طرفا ی غارکو اون طرفا کلوبش است مراحتمون جا تو اون پوز نکرده چه ای می خورد وارد یک به زبانی باوری هالک میگویند یک محلهی تقریبا دویش نفر کوس ان نہوا و نتیجے ایمن شخص تھا تر ہم بنوچستان خودش بنوچے سٹم وہ میں خود جالب تر کے ایک فیرزا اونجا بود مندم کنتوری از کنارے چادر خودش کون بیرون اور داتومی کون بے فرانی پہ دیس اس یکہ سے نہیں خدا میں نہ اون ردیذ بود من اون گمان می کنید گبئینا بفلان می دیئی کہ ان کلیمه سال من را بخانت مثل کون زمان راست موزن مولا نگو دیئی یک سال می رفتن زمان را گفتن کہ ایک لا اله الا اللہ, اللہ محمد رسول اللہی بگوید ان کلیمه سال شما یہ ذرہ بفلانی بگو دیئی کہ انی سال کلیمه گا من گفتن ان چی گو ان مادر خانوں میں همون پیر این مادر میں اون پیره مرده چیز جالبیه من تعجب کردم که چرا انسان اینجا این زیاد عمر می دیدم که اوا خیلی شفاف و صعب هیچ علودگی در اوا نیست در آب نیست در اون فضا نیست همه چیزشان طبعی شیر میخورن طبیعی. طبعی گیای می خورن اصلا هیچ علودگی سم و پود نفرده هر چی که انجامی خوردن همه طبیعی بود گوشتشان طبیعی شیر طبیعی همه چیز طبیعی و عمر این سبب درازی عمر انسان می شود سلامت انسان را دارد پدری هست که و ثمین صنای جدید علت آلوزگی هوا شوند گازهای ای شده و لایه‌ی عون را از بین برده و آباهای دریا را و زیر زمین را آلوده کرده بعض وقت ما های را مشنوید که می گوین های حستی فلان کشور را می فلان جا دفن میکنن زیر زمین این زیر زمین را هم آلوده بکنند درگیری می شود که چرا اینا را دفن می و این زیر زمین را به این سنعت نابود کردند فزارا نابود کردن روی زمین را نابود کردن من یک زمانی یادم از گفتم که الان زمین ما با سمکود موتاد شده زمینم موتاده برای تشمیخ خود ما موتاد شده زمین موتاد خود ما موتاد محصولیم که به دست میارم اونم موتاده اما اون زمان این طوری نبود محصول موتاد زمین موتاد خود من موتاد دیگه همه موتادین با هم میخوایم زندگی بکنیم که آلودگی خیلی زیاد این چیز خیلی جالبی هست میپروند که دخالت انسان سطح زمین را آلوده کرد اگر میگذاشتم اون طوری گنجش قسم مره های که این همه این چیزا اشرات موزی را میخورن اونا مفیدن برای زراعت حشرات هستند اون حشرات موضی را میخورند مفیدند برای زراعت ما اما ما اون حشرات مفید اون چیزهای مفید را با سم کشتیم و امروزم سمم کاری نمی کند همه چیز آروده همه چیز بین رفته چارم میفرمین که دخالت انسان در تغذیه حیوانات، گوشت و شیر را آروده یک کے که به بیابان میشارن چار کلو شیر میده ما این غذای مسنوری درست می کنیم با این قابی دم که این چل کلو شیر میده این بیس کلو شیر میده این شیر آنو ده خودش. جنون گاوی به وجود میاره قابی ها دیوانش چون بدرش بخون غذا عادت نظاره ای داد می کنیم جنون شیرش انسان را دیوانه می کند گوشتش دا دیوانه می کند این جنون گابی را که وجود آورد در تاریخ شما داری که دیوانه بشوند این تغذیهی که انسان به اون داد اون حیوان تحمل نتوانستن تغذیه باید طبیعی باشد حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمین شما که مریض شدید شیر گاب بخورید مجتم چی؟ اگر زنبوری اصل اصل شفا هست برای این که از هر بولی میگیرد این درد نیست من خداون برایش دوا گذاشته این زنبوری اصل از هر بولی میگیرد اما اون دوا در اون اصل هست شما شیرگاب بخورید این بیابان میرود انواع و اخصام علاقه را میخورد یکی درمان درد شما هست اون میخورید درد شما درمان میشه الان امروز اونطوری طوری نشده سن تھوری نہیں سن چیز آلوذا کر دیں خصوصا ان کہ کارخانہ بے بر ام دیدال ہوتا رہا گفت کہ الان کارخانہ دارا برای منظر خاص مینا شون دی گفت کہ ان عرصہ واجبی نریزن دین شیرہ فاسد مشور ما دان بیاں که کہ واجبی درست مشو ود شیرے کہ واجبی ماستے که درست مشو دیگه دی چه بلای بر سر امامی آرد ای ناراتی میده ای ناراتی ای مختلف اون شیر بجایین که مران آصاب مرات بکنه جنون گاوی را در وجود امامی آرد بس بی فرمین که تغذیهی حیوانات هم مشکلات را به وجود آورده که ام شیر اونا را آروده کرده و ام گوشت اونا را آروده کرده پنجم امون اکتشافات اتم که صلاحای شیمیائی را به وجود آورده نابودی انسان و حیوان است و یک این میبینیم که یک شار را و ایران می و ناکازاکی که امریکا و بم را در اونجا بوم اتم را استفاده کرد الان از اون زمان نزدیک به 50 سال می 60 سال می گزرد. هنوز بچه ها ناخص به وجود می در نسل اونا که چندی نسل گذشته هنوز اثر دارد بگیر از اخراب در اونجا هیچ موجوده نمونده بود اونجا دانستان که اخراب در مقابله این سرای شیمیایی مقاومه دیگه هیچ چیزی نمونده بود همه چیز نابود کردن انسان حیوان همه موجودات را نابود کردند این انسان کسمن کشف اتم شد اما نابودی را با دست خود به وجود دارد زهر الفصاد والبحر فلبر و البحر به کسبت ایدن الناس پس آلودگی های مختلف، پس بیا ما جنگل را برای خود نگاه داریم گونه های حیوانی را نگاه داریم و با این کارخانه ها و غیره این فضا را آلوده نکنیم طور اگر کارخانه چیزی می سازیم طور باشد که این فضا آلوده نشود بنده خالات در تغذیه حیوانات داشتن نباشن به با صورت طبیعی اگر تغذیه بکنن گوشت اونا شیر اونا دوای بدن ماست غذای بدن ماست و انشنید اکتشافاتم که قسم بجای انکه به انسان نفع برسانند درست نه فهم باز جا اما zararشان بیشتر از نفعشان هست با تمام صدا دو تا نقطه یادآوری میکنم یکی اینکه ما در اخبار میشنوید و شنیده اید میدانید که قرار دادی که استان های شمالی دولت ما برای قصان های شمالی که عبارتند از گولستان و مازندران و گیلن نمیدانم هست یعنی قصان های شمالی گازشان از ترکامنستان قرار دار از اونجا میامد این فصل زمینستان چنانچی که در اشتاد و شش این گاز را قط کرده امسال هم قطش کرده واقعا اگه سرمایه شدیدی بیاد فاجیه برای ما پس از شما عزیزان درخواست می شود که در سرفا گاز خیلی کوشا باشید کوشش بکنید که در گاز سرفا بکنید و دوای اتاق از همون نوزه و بیس درجه بیشتر نباشد همون اندازه نگاهش داری. که اگر خداینا خواستند سرمایه شدیدی بیارد ذخیره درستان باشیم واقعا برای ما یک فاجئه درست میشود گاز غز شد امروز ما این توری نیستیم که بیاییم روی آتش نان بفزیم روی آتش بیا غذا درست بکنه. و این فاجئه ایست الله کشم و عزیزان در سرفجوی گاز کوشا باشید تو کوشش بکنید سرفجوی داشته باشید نصر دیگری که روز چهارشنبه مولانا هم از صفح احوال شار زاهدان دیدن کرده بود یک مثلا را به عزیزان صفح اوالی و دستندرکاران گوشدت کرده بود که ما در بلوچستان سیستان و بلوچستان بلکه در سر سر ایران هم این مشکل هست ما مشکل زیادی در شناسنامه داریم بازه را خدمات میکنن چندین چند این بچه برایش پیدا شده شناسنامه بچه هایش نمی دهند هیچ نوع خدمت, خدمت تعلق نمی گیرد ما میدانیم دانیم که امروز اگر یک کسی خدمات شد یعنی اینکه اون را نابودیش را گوید که امزا کرده مولانا امتاکید کرده بود که این من خدمات را بردارید و شناسنامه های مردم را زودتر بدهید این یک مساله. بازی را مشکل که تابعه می زنند دینا را دقیق بررسیب کنیشن اصنامه اونا را بدهید و در خبرهای جدید هم شما شنیدید که در امون شاری که گورخابی در اونجا مشهور شد از امونجا حداد زیادی از بلوچ هایی که آمدن در کنار شار تیران زندگی بکنند در چادر زندگی کردید چادورا اونا را این آز بیچاره جای ندارن، نشنا آسنامه دارن،, نشن آسنام دارن، بگه بچه ما را میگیرم، بگه ما میگم بچه ما هست، بگه نه باید بره، اون آزمایش خون بده. و هر آزمایش خون که ما بگیریم، یک میلون و دویست دو هزار تومنه، ما می که هم آزمایش خون بدهیم که بچه مال ما هست یا نیست، شن آسنامه داشته بارده دیر مشکل نیست. و رفتان جلوی خانه ملت، به نمائندگان، خود رساند و گفت بازم این مسئلہ را اداما بیدیم با این نماندگانی مجلس خانه ملت برای این ملتی پیشناس نامو بیسرپنا باید کاری بکنن هرچی سریتر ان مسئلہ حل بشود ایک انسان کشناس شناسنامه داشتنا باشد یا مان خدمات باشد یا مشکوک و تابعی واقعا برای مشکل ہے امروز معمی دانیم کہ به هر جب دروی اگر یک سر شما را بشکند دست و پای شما را بشکند شما اگر بنوان شاکی هم بروید میگه شناسنام را بیدی اگر شناسنامه را داشت اون دیگه شکایتش شما اتفایی گوش داده نمی به شکایت را بس نمیتونیم که این شناسنامه از ضروریات اولی زندگی بشره سابقا در بنوچستان من خودم یادم هست قصه می کردن می گفتن که وقتی که گفت اون با اولاو یکی بود اونجا زایدان میره با اولاو میگشتونه چون یک جای روشتانه بودن چادر نشین اکثر مگه وقتی که خبر میشدن که پلانی با اولاو پلان جامدش ناسنامه میدهد اون از اونجا کوچ می کردن که نگویم پشت این تفای خیلی دیگری هم هستک چادر نشینه دیگری هم هزدن از اونجا کوچ می کردن یا اگر شم می شد برا تشبی بلا نسبت این سگه ها را دوغ ترش می دادن که نا آو آو نکنن که سبتی آواری خبر نشود برای شناسناما دادن نیاد گوبین مشکلات دارد ما شناسناما نمی گیرین مردم نمی دانستن که این شناسناما چه مزایه دارد اما انطوری منده انداله نمکنه وقتی که ناتوازه می کنند می گنند شما مشنوق و تابیه نربیه ایدم انطوری نگاه بکنید تابیه بکنید انشاءالله هرچی سریتر ملی مردم مشخص بشود همونطوری که مولانا این را کرده بود تغاظه امام امین هست انشاءالله هم مجلس نمائندگان مجلس هم مسئولین زیره و هم سبتی سریتر بیداد این بندگان خدا برسند خداوند تبارک و تعالی همه امارا توفیق امارم نیک میداد و آخر رضاوند خمالین دارد امام